خب سآل دیگه ای که خیلی ممنونم از پاسفتون سال بعدی من سآل سعباب دوبانگی انسان به کلی ما می‌دونیم که هر فردی تا زمانی که هنوز پشت بدیم و احکام دینیست و هنوز خدا و در واقع قیامت و حیات پساخت رو باور نداره در انجام هر عملی هیچ شک و تردیدی نداره و با یقین اعمال خودش رو انجام میده بله میل انجام هر عمل هم برای اون فرد همون رضایت نفسانی است. به واسطه ای که به این رضایت دست پیدا بکنه هر عملی می‌تونه موجه باشه. هر دروغی هر فسادی، هر تباهی، هر چیزی می‌تونه موجه باشه و اون فرد به راحتی اون عمل رو انجام میده ولی زمانی که این فرد رو به دین و احکام دینی میکنه حداقل در شروع قضیه ذهنن تلاش میکنه که دین رو باور بکنه و کم کم این رو قلبی میکنه در انجام هر عملی با دو ندا با خودش رو برو میشه ندایی که اون رو به سمت رضایت نفسانی میکشونه و ندایی که از وجدانش در واقع اونو مخاطب قرار میده یک باید و نباید یک خیر و شر. و یک حلال و حرام در اینجاست که وجود فرد کاملا دو شبقه میشه دوگانی میشه و فرد در انجام اعمالش با تردیدها و ترس‌ها و حراسهای رو برو میشه و هر بار که میخواد این عمر رو انجام بده نمیدونه واقعا وسته به اون که اون ندای وجدان چقدر قبط داشته باشه و یا اون نفسانیت چقدر قبط داشته باشه میل به سمتی میکنه ولی در این حال باز هم در وجود خودش با تردید ها حراس ها رو به رویه اون رو می‌زنه، میزنه عربابت نفسش اون رو به جدال میکشونه و از اون میخواد که به اون توجه بکنه من از شما خواهش میکنم که این سر این دوگانگی رو در بشر توضیح بدید مچکر نکته بسیار جالیه بیرده در واقع ما تازه با این شبت هایی گردیم در حکم یک مقدمی بود که اهمیت مثلا رو نشون بدیم. اهمیت شریعت رو و نیز راز جاودانهی شریعت و اخلاق و امر رو و حالا با این سآل ما میرسی به اصل رزی کاملا درست قرآن کریم میفرماد کافران در هر آنچه که میکنند کمترین شکوتردی ندارند کافر جاهل فنی انسان در ارس جاهلیت قبل از اینکه هنوز فطرت دینی درش پیدا شده باشه وجدانی هرش پیدا شروع باشه مثل جانگانان مثل گولان وقت میچره آیا در آنجا که دارم می کنممگه شک داره ن این زندگی حیوانی از اینله میشه گفتش که اساسی ترین و انسانی ترین تعریری که در مورد انسان باکن احتهیما میشه داد این اتسا که انسان حیوانی است دوگان دویستی انسان حیوانیست دیالکتیکی انسان حیوان نیز جدلی این مننا هم باز خوده قران کردیم فرموده که انسان در اکثر موارد و در واقع با اکثر چیزها دو جدال است این واژه نسبریه بودن جدال است جدال از خود کلمه جدال خود قوالان است ما گفتیم جدال خب وقتی بدید میاد که دوگانگی بدید بیاد بکنم نکنم ها همین جدال خودش دال بر دوگانه بودن, این انسانه. دو بودن انسان است که دو واقیتی کاملا متناقض در انسان حاکم خب این انسان انسانی است که از حیوانیت خودش از میمونیت خودش از عرصه جاهلیت خودش خالش شده و بوی دین و فترت درش پیدا شده خب به قول معروف قول مولانا یک کلامی داره در این باب میگه این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم ببین پس خود این جدال خودش دال بر، وجود داشتن اختیار و قدرت انتخاب در انسان این تردید ها یه عالچی ویژه انسانی است انسان به میزانی که در هر کاری بخواد بکنه شدیدتر دچار تردید میشه این انسان انسان‌تر بیدارتر دینیتر و صاحب اختیار تره این تضرید رو ببینید حالا از من گفتین حالا نکنیم بله این تردید ها جدال بعدی بیارین جدال ها برای البته اگر بر صراط مستقیم هدایت و معرفت نباشه باعث استهلاک خستگی میشه اینها هم هست از لازمه روانشناسی ها ولی ارزش واقع اینقدر جزینه که این جنبه های منفیش واقعاً چیزی است که ارزش نداری آدم بگیم که ما بیان میگیم که آقا اینجا دار با وسخستی بدبختیه بس ولی اینجا دار باعث وسخستی با وسرکته آفرین موتور محرکه انسان. انسانیت ولی بله رشد اصلا انسانیت همینه انسانیت دلل همینه اینجا واقعا زیاد میشه گفت خب ما اگر طرفتار آزادی انتخاب اختیار هستیم که ظاهران همه هم این میزنن پس وارستی حق این جدا و دوبانیگی رو درک کنیم فرق میمون با انسان همینه انسان های کافر جاهل در هران چیکی میکنن شکی ندارن ببین یک بچه در هران چیکی میکنه قریصان هم اگه شکی داره اینو بر میداره اینو میزنه اینو میشکنه خودشو آتش میدازه ولی به میزانی که امر و مجیب در مادر رو میبینه شک میکنه و حراس میکنه و کم کم میفهمه که آقا جو سری کارهایی هست که باستی کرد و یک سری کارهایی رو نباستی کرد. خطر وجود داره، مسئولیت وجود داره. ببین در حقیقت این جدال سر مسئول بودن انسان نسبت به وجود و بودن و حیات اصلی و سرنوشت خودش. ببین این همون مسئولیت هست. این همون اختیار، این همون انسان بودنه. این قضیه از بهشت آدم و آغاز شد. قبل از اینکه آدم هم بود دوچار اون مشاجره بشند دوچار مقتلا به اون شجره بشند شجره اون رفهوم مشاجره یعنی همون جدال ببینید در واقع میشه گفت وقتی که به اون شجره ممنوعی که به نظر من مشجره ممنوعی علا لازم معرفتی هم اون شجره مشاجره بود یعنی این شجره که او رو دوچاره جدال کرد دوگانگی کرد و تردید کرد خیلی تا بله تا قبل از آن میشه گفت یک هیوانی بسیار خوشبخت بود در بهشت و هیچ خبریم نداشت معرفت بود جاهل بود نسبت به هر که است نسبت به خلقت خودش نسبت به اون مقام حلیفت اللهی خودش جاهل بود خب ما میدونی که ابلیس وقتی که نزدیک شد با آدم حقا این قضیه به تدریج آقاست در داستان خلقت انسان در قرآنی کردیم اما داریم مطلب رو آمیدم واضحه از زمانی که به شجاره ممنوعه به بس, بس ابلیس نزدیک شد آدم آبا به شجاره ممنوعه ایک دفعه به خودشون اومدند او دفعه اولادهای خود رو دیدند ببین، اونه اصلا متوجه اتا حیکت خودشون نبودند نبودند تا اینا قرقه در یک مستی و نشعگی بهشتی بودند که خود اون اصلا اینها رو قافل کرده بود تباقی گفت فنا بودند این شکلی میشه گفت یعنی به خدایی محشیاری معرفت نفس نداشتند و به مرد ندیدی شدن به شجره ممنوعه به اولت های خود رو دیدن و پوشوندن در واقعه شکر اونه حتی متوجه حیکل خودشون نبودن یعنی نمیتونستن آقا نبودن که هستن وجود دارند. ببین وجود داشتن ولی بر وجود معرفت نداشتن برای همینه در معرفت دینی و خاصا معرفت علوی از ذریعی الاسلام کسی که خود را شد نابوده یکنی خودشو نمیشسته مثل موجودی که وجود نداره پس آگاهی و به خود آمدن آن برای انسان وجوده وگرنه نه غیر از اون وجود حیوانیست حیوانات بر وجود خودشون نابایی ندارند فرق انسان با حیوانی و لذا با این وصفصه ابلیسی ابلیس خود نخستین رسول خدا بوده یه ها یک سر عظیمیه خدا با داد تا انسان رو امتحان کنه خب این خدای نکرده باز توجیهات ابلیس و نشه در برخی از مفاتب کاذب و دجالی شده رو باز بدونیم که ابلیس هم اولین رسول خدا بوده معمولیت داشته و خود ابلیس و شریعتین هم همونطوری در واران اومده اینا به عمر خدا به آدم نزدیک میشن خود خدا بند برمونده که شریعتین به عمر خدا به کذابان نزدیک میشوند اونها رو در واقع به خودشون بیارن و بعد میگه که نزدیک میشن تا اونها رسوا بشن این دو اون روی که بودن بفهمن که اون تبهامو دروغ رسوا بشن و توبه کنن در حقیقت ببین این شکلیه ولذا این واقعی که در بهش رخ داد واسطه ابلیس نزدیک شدن آدم شجره شجر ممنوعه موجب به خود آیی شد والدزا نبوت آغاز شد از این واقعه بود که حضرت آدم نبی شد نبی این یعنی صاحب خبر نبی یعنی خبر یعنی دفعه با خبر شد از این که هست اول خبر بود که دیده هست بنابا فهمید که وجود داره در قابل انسانی از این لرزه شد پس نبوت سراغاز به خود آی بود و نظار سراغاز دوگانگی انسان با خودشون برو شد منشه تمام دوگانگی ها را انسان با خودشه این دوتا کیه؟ اه؟ من و خودم این دوتا با خودشون برو شد یکی شاهده، یکی مشهوده یک یکی حالومیه که معلومه. درست؟ این منشأ ذاتی دوگانگی‌های انسانه. من و خودم. خوب، خیر و شر، زشت و زیبا، باید و نباید، شادی و رنج، خوب و بد، ضرر و فایده، بهشت و جهنم، علم و جهل، تمام این ها که همه ذاتاً دیالکتیکی و دوگانه اند. ارزشای دوگانه ما نداریم. ازشای بشری تماما اند خب نبو بلاغاز شد احکام الهی شروع شد نخستین احکام شریعت پیدا شد که اولشم مربوط به رابطه آدم حوا بود نخستین احکام مربوط به رابطه آدم حوا بود پیدا شد تا انسانی دوگانگی رو درک کنه تا نهایتا در کمالش بر اساس این احکام دین به یگانگی برسه برای همینه که هدف ذاتی دین چیه توحید توحید یعنی یگانگی یعنی رسیدن به یگانگی یعنی نجات پیدا کردن از این دوگانگی خب ببین ولی اون انسان یگانگی که بهش میگن انسان موحد پدار پیدا شد اون همون انسان جانوری ما قبل از دین و دوران جاهلیت نیست اینجا تازه نبود که بخواد یک یگانه باشه یا دوگانه اینجا هست ولی یگانه است از لازم منطقی این ظاهران شبیه اونه ولی مطلقا رفتی به اون نداره این یگانگی هستش که انسان باست معرفت اون را یافته اون توحید مبهش شدن مبهش شدن کمالش یگانگی من و خودمه یگانگی نه برابری دیدین؟ یگانگی ذات خیر و شره رسیدن به یگانگی ذات باید و نبایده رسیدن به یگانگی ذات واقعیت و حقیقت. نهایتن الازه معنای فلسفی و حکمت رسیدن به یگانگی آنچه که هست و آنچه که باید باشه فلاسفه اخیر اون رو در بیان میگن دوگانگی بین دیالکتیک بین هستی و بایستی این همه تا به یگانگی برسه یعنی چیه این در آنچه که هست ها حق رو ببینه اون بایستی رو اون آرمانشق رو در خود واقعیت ببینه حقیقت رو در واقعیت ببینه این کمال معرفت و معرفت توحیدی است که از قلب این دیالکتیک و این دوگانگی میجوشه پس دیدن یگانگی است یگانگی تصاوی نیست باز خود قرآن فرماد که کافران میگویند که نیکو باز با و پاک مساوی است نه این مساوی این همون لیبرالیسم همون کفره نه واسه بدونیم که یگانگی تساوی نیست یگانگی تساوی نیست ربطی نداره این بحث, بحث بسیار مهم و اینجا جاش بحث نیست همینقدر فقط اشاره می بنابراین پس حق این دوگانگی واضح شد انسان به خدا آمد دوگانه شد انسانیت نی همون شروعش نی همون دوگانگی است انسان به میزانی که دوگانه است انسانه البته به سمت یگانگی بستی، قرار کن تا نهایتاً به یگانگی بین خود و خدا برسه نه اینگه بگه من خدا هستم این تصاویگری است این جهد جنونه این خودش اشد کفره من خدا هستم نه خدا را در خود یافتن این کمال یکانی دیش عرفان علاوی همینه در, هر در جهان جز خدا ندیدن همون چیزی که علی میفرماد که هرچی میبینم جز خدا نمیبینم از یه طرف میگه هرچی میبینم در جهان جز خدا نمیبینم از یه طرف دیگه میفرماد میگه قلب من عرش خداست، هست تن من کرسی خداست، و خدا جز در وجود من شناخته و فرستیده نمی شود این کمال انسان انسان کامل یعنی همین کمال توحید یعنی ها یعنی یعنی خود و خدا نمسابیگری من خدا هستم یعنی من مساوی خدا خیر. این جهد و جنونه هیچ چیزی که نمیاد. داری نمی از بزرگترین و شاید تنها علت اصلی خطای آگاه و ناخد آگاهی که در فلسفه عرفانی و در های نظری پیش اومده که خیلی قوس اندال حق میزنن به جهل و جنون که من خدا هستم از بابت این مسئله است که درد نمیکنن که آقا جان یگانیگی هی رفتی به تصاویگری نداره توحید تصاویگری نیست خیر مساوی شر نیست زش مساوی زیبان نیست آتش مساوی نور نیست بهش مساوی جهنم نیست آه؟ انسان مساوی خدا نیست رخیر. اصلا نیست و توحید مقامی معرفتی و وجودی فراسوئیست فراسوی خیروشر فراسوی نیکوبد فراسوئیست مصادیقی نیست ان انسان بواسطه بتونه از میانه این دوگانگی برخیزه برخیزه قیام کنه قیامت همین بالا میشه این انسان مباهدی انسانی اهل قیامت و به قیامت رسیده است و به حضور خدا رسیده از میان این دوگانگی برخیزه بو فلس تو خود حجابی خودی از میان برخیز از میان این دوگانگی ها برخیز تو برخیز در مقام توحید و شهادت قرار می این واسه بیشتر از این جاش نیست اینا فقط اون موضوع اصلی شریعت فقهی و مسئله حلال و حرام پس داستان حلال و حرام باید و نباید امر مانیفو نیازمند منکر گناه و سواب تماماً با سرش شد شود چه واقعی است پس انسانی که فقه رو شریعت رو حلال و حرام رو منکر در خود داشتن خودش نمیدونه در واقع میخواد برگرده به دوران هیوانی خودش برای از کس، تمام کسایی که این گناه امداد دارن اعمال زندگی روزمنره ها تماما زندگی خلی خوکی و سگی و ها تماما اسیر در پاییم هستند ها و از نافه خودشون بالاتر نیستن یعنی بالاتنه رو اجاره دادن اجاره دادن به کی؟ به شیطان اجاره دادن وجود خودشون فقط شکم و زیر شکمشون می‌بینیم دیگه مثال نداریم بنابراین حلال و حرام می به این نقطه. در یک کلام اونجور رو خود هر کسی، یعنی نفس هر کسی خود در عربی منی نفس در روانشناسی اروپا بهش میگن سلف، اگو یا سوپر اگو مفاهیم دیگر قضیه است. بنابراین در واقع باستی گفت نفس اگر تماما حیوانیت حیوانیته تماما ظلمته نفس یعنی حیوانیت انسان بر خودش حرامه خود در نقطه مقابل خدا انسان بر خودش حرامه خود پرستی حرامه اینو بسی بدون خود پرستی برای کسی که میخواد انسان باشه حرامه خود پرستی یعنی نفس پرستی چرا برای این دور رو ساقت میکنه در پایین تنه انسان چون صاحب روح هست انسان وقتی که بشه در پایین در نقص پرستی دیگه یک سگ و خل و خوک و گاو معمولی نیستش که یک حیوان دیوانه است یک حیوان مالی خولیاییه همین نوارا می که اکثر این ها جور ها از حیوانات هم پسترند، از حیوانات دیوانه تر و انجورتر در یوزتر. حیواناتی هارند حیوانات دیوانه خود حیوان بودن خودش مقام است برای چنین. آدمهایی وقتی روش کنن تازه با مقام های حیوانیت می رسن یعنی تازه ترا برای که حیوان دارا یک نفسی متعادله که تحت امر خدا قانون مندانه عمل می‌کنه. خود حیوانات هم مشغول ذکر خدا هستن انسان که که اصلا ذکر نداره فکر نداره شبه نداره بسیار از حیوانات این ما می بینیم در خود بیولوژی روانشناسی حیوانات در آثار فلسفی علمی که رو حی معلوم شده که حیوانات دارای چون حقوق و حوشیاری هایی هستن که انسان های معمولی هستن فراموش کردن و حوش قریز حیوانی خودشون رو فراموش کردن طریقاتی که مثل کسانی مثل موریس مترلین مثلا در مورد حیوانات انجام داده و انسان ما تو مفهود میشه که اینها چه نوابغی هستن این موچه مگر زنبور انکبوت این از انسان نابغه و هوشمندتره. تره خب این بر انسان قف وقتی که بخواد انکار کنه دین خدا را از حیوانات هم را اینجوری‌تر و دیوانه‌تر و درویز‌تر میشه نیرو واسه بده. بله دیگه دیگری از این قضیه اینه که پس ما گفتیم که خود انسان اهریدم بر خودش حرامه است. تقوا یعنی چی؟ یعنی پرخیشتندالی دیگه یعنی پرهیز از خیش تا میتونی از خیش فاصله بگیری. تسلیم امر خدا باش. تسلیم خدا باش. تمام؟ با خود نیست با خداست. زیرا اون خود خود ذات خودت همون خداست تو که خود سطحی و دنیایی خود پاسه بگیری تازه با اون حق خود خودت خود می‌رسی که اون خداست با خدا همه خدا خدا می آه؟ برای رسیدنی به اون خدای خود آه؟ بایستی از امر خدا که دین و شریعت و احکام انبیاء الهی هست با تباییت تا خدا رو در خودی هست یعنی به توحیل رسید از این و جدل و دیالکتیک نجات پیدا کرد بنابراین سر این و دوگانگی و فهمیده بشه اگر افلاطون میده که عرش معرفت دیالکتی به این معناست هست این آن کسی که راز این دوگانگی و جدال و تناقض رو کرد در واقع میشه برو براستانه توحید و یگانگی بانگی قرار برای برا همین اندیشه بشری خردورزی بشری تماما دیالکتیکی است ولی دیالکتیک پرستی خودش کفره تناقض پرستی. نه خیل. دیالکتیک راست نیست فلسفه در ویدیو دیالکتیک دیالکتیک فلسفی پیش اجرا دادن ما دیالکتیک فلسف نیست ولی هرطی دیالکتیک رو درک می‌کنید دیالکتیک یعنی وازده از صد خب نخستین چیزی که به طور واضحه از این حقیقت سخن گفته آقا علی علیه السلام این که هر حقیقتی واسطه ضدش باشناخته میشه یعنی چی دیالکتیک درسته، ولی این منظور نیست این لاهی این هدف دیالکتیک خودشه ابزار دیدن منطقی است منطقی که بر واقعیت نفس انسان استواره در واقع میشه شکنه نفسانی ترین و طبیعی ترین و انسانی ترین منطقه دیالیپتیکیست از رو مبس بدونیم عالی اندیشه ها و نابترین خرد ها و معرفت ها در انسان های بدید آمده که دیالیپتیکی رو شناختم خود مولانا با قول خود قربی ها با قول خود هگل متقده که بزرگترین دیالیپتیک شناس تاریخ بشر بوده مولانا اینو ولی دیالکتیک پرس نبوده خود ملا صدرا هم میگه که عدل الهی رو فقط در تضاد میشه شناخته تضاد از داد یعنی دمون دیالکتیک خوب خوده وجود انسان نشان وحدت ازداده در انسان هم خیر هست هم است انسان در عین خیر با شرداره زندگی میکنه و در این ها در شر ها میتونه به خیر باشه این ها از خیلی نافذیر خیروشر اصلا دیگه مرزی وجود نداره بین روشن. حلال برای دیگرش در سر واژه و علم هرمونوتیکیش که من نگاه می کردم خیلی واضح از حل یاد من مسترین کار برده حل همین که حلال هم از هم برمی کسید یک دست شدن محلول شدن هم شدن چند چیز در هم دیگه ها و یک نظام و نظم پدید آمدن حل شدن آب و روغن هرگز در هم حل نمیشه. خیلی چیزا خیلی چیزاده حل نمیشه. حلال شدن یک انسان حلال کسی که زندگی حلالی داره در واقع داره و اساس زندگی میکنه که تمام اناسر زندگیش ها بتونه در همدیگه حل بشه و یک محلول یک دست و واحدی بشه نظر بدا میکنه یکی از اهداف دین نظمه انضباط برای وظیفه از جمله مسائل مهم در شریعت ولی شناسی این شناسی قانون شناسی و زندگی دینی فقط انسان رو به سمت میبره که تمام اناسل و پرامترها و اجزای وجود انسان بتونه در همدیگه حل بشه و یک محلول واحد و یک دستی رو به عنوان هویت اون فرد براش بدید بیار از تناقضات و چندگانگی ها به تدریج در بیار صدها مسئله داره انسانی مسائل تبدیل به یک مسئله واحد بشند حل شدن دقیقا همینطوره حلال یعنی همین حرام ها انسان رو تکه پاره میکنند یک مثال پزشکی میزنم مثلا ما متقریدیم که رزق حرام باعث زجر عذاب و بیماری های لا علاج میشه چربی خون اوره خون قند خون قند خون کسی که قند خون داره در واقع دارای یک تناقض لاعلاج و بیمارگونه است در این حال قند در بدنش بیشتر از حد موجود و این مورد نیازشه و این در این حال این قند به درد بدن خودش نمیرسه جذب نمیشه حل نمیشه در موجودش این قنده ها متبلور شدن ترد شدن ترمه شدن شناورن در خونش ولی در خدمت وجودش نیستن در این حال اضافه بندری ولی وجودش در قحتی انده برای این بی بالغندی‌ها خودشون بالای ولی بالا سره واسه در واقع حالشون از به هم بخوره در یه گان بیشتر میخورن اونایی که چربی خون دارن بیشتر میذارن چربی بخورن ببین این تناقض رو ها خب رزق حرام باعث همچین وضعیتی میشه نمیذاره که قضا در وجود انسان حل بشه و جذب بشه و قضاییت بشه برای همینه طرف طرفه بیشتر و بیشتر بخوره هرچی بیشتر میخوره باز هم قعی ز به سر میشه. این مثالی کا بدن پزشکی است در مسائل فرهنگی هم همینطوره در مسائل اقتصادی و سیاسی هم همینطوره. نگاه کنید ما پدیده ها و قدده های سرطانی فرهنگی اقتصادی سیاسی یا مگه نداریم اینها نامهنول ها و حرام های زندگی یک فرگرار جامع است که حل نمیشه. در زندگی هویت به دست نمیده یک وجود یوانهی رو پدید نمیده برای یک فرد یا خانواده یا یک جامعه یا یک ملتی همه چیز در این فرهنگ هست همه عناصر در این فرهنگ در این جامعه هست ولی همه اینها مثل قند خون اوره خون چربی خون کلسترول اینها ها به خدمت وجود انسان ها در نمیاد که باعث سلامت و عزت و رشد و تعالی و معنویت بشه همه چیز هست دین هست تمام عناصر دینی هستن فرهنگ هست هنر هست قضا هست اقتصاد واسش خوبه همین خوبه ولی هرچی خوب خوبتر میشه ظاهرا ها اون جامعه ها دچار یک قحطی زندگی میشه و بیمارسر میشه برای که این عناصر کریستالیزه شدن و حل نمیشن در خدمت وجود اون فرد یا جامعه در نمیاد این معنای بی‌نهایتمانی این حاصل حرامیت رزق حرام در اینجا مونیستین به معنای رزق ماونیستین بحث حلال و حرام مربوط به رزق رزق یک بحث بسیار وسیع و عظیم یکی از رزقها چیزی که انسان میخوره نفس کشیدن یک رزقه دوست داشتن یک رزق نفرت هم رزق دیگری است خرش یک رزق آرامش یک رزق همه این ها رزقه هستن، رزق مادی و منعی هستن پس رزق فقط غذا نیست، معیشت فقط غذا نیست معیشت از خودش از عیش میاد، یعنی عزت، راحتی، شادی، تراوت کسی شکل برمیخیزه از رزقی داریم که واقعا معیشتیست و رزقی داریم که اناسور معیشتی توش هست ولی تبدیل به معیشت یعنی عیش و عزت و سلامت نمیشه اینخ بهامبر این کام تاثی را که معاش نیست معاد نیست همینه اینجا معاش از عیشه اینجا داستان فقر و 02 نیست کسی که پلوک هم در بخاره گوشت هم در بخاره بس کن او معاد نداره این حرف بااط کسی که در این دنیا دارای سلامت و تروت و شادی نیست این یعنی دارای نیست طبیعتاً نیستتا معاد هم نداره از معاد میترسه این مرا جنبه دیگری یعنی از این حی از پییانبر هم در اینجا الیاشی اوات مثلله نیست انسان مؤمن انسانی شاد مفرح فرهبخش ممن یعن آرام سرحال شاکر حتی اگر نان در خانه نداشته باشه پیامبر اکرم سالهای آخر عمرشون دریای سرود خدیجه رو به فقرا بخشیدن و خودشون در خانهشون آتیش بلند نمیشد دود آتیش ولی غذا برای تبق نبود نان خشک می‌خوردن، سنگ به شکم ولی لبخند از روی لبشون معرف نمیشد این لبخند تظاهری و ریایی نبود آه؟ بله اون عیش حقیقی در دین پدید میاد و تمام شکر و عزت و آرامش رو افت و حاصل رزق علاله. رزق. پس مفهوم کلی رزق و تمیحه کافیست و حلال و حرام بودنشم. با با چند تا مثال بهتر میتونیم درک بکنیم رزق مادی داریم رزق معلوی داریم رزق عاطفی داریم رزق سیاسی داریم رزق فکری داریم اتا ببینید مطلب رو بخواهم دقیق درکنیم باید این بخش عظیمی از آیات قرآن مربوط به احکام شریعت‌ها میشن مربوط به رزق هستن. رزق اینکه شکم نیست. ها بخشش مربوط به تغذیه است، بخشش مربوط به روابط عاطفی و اجتماعی. در واقع میشه گفت احکام مربوط به شریعت ها دو مطلب اساسی داره. یکی رزق مادیات، ارزاق و ترویجات مادی، یکی عاطفی مربوط به روابط اجتماعی. تمام احکام دین بر مدار همین دو تا موضوع شده. هیچ مطلب دیگه ای نداره. دو تا قلمرو رزق رابطه انسان با جهان با طبیعت و رابطه انسان ها با همدیگه دو قلم روی رزقه رزق معنی آتفی و رزق مادی حیاتی جانوری این دو دسته کلی از رزق هستش به میزانی که این رزق حلال هستند در وجود حل میشند جذب میشند باعث رشد و عزت و عیش و سلامتی و شکر و تعالی میشند یک نان حلال یکی عاطفه حلال ببینیم این در دریای از سخنان از امامان ما هست خود از علی الاسلام میفرما تا تن تو پوست و گوشت و خون تو پاک نشه دین تو پاک نشوده ببین علاددی پی و چربی ها رو میگه نشانه بیماری و کفر شماست آب کنید این پی ها و چربی ها رو اینا جلوی قلب و گوش و حواست شما رو میگیرن و شما رو ابله میکنن رزق حرام تبدیل به پی و دمبه و چربی ها و اناسور نامحلول میشه کبد و کلیه و قلب و ریه و و چشم و گوش و همه چیز رو به ساله پی میگیره و انسان رو کل و کور و ابله میکنه کلن کورن لادن گمگن شعور ندارن و قلبشون مهر خورده اینه از بیان بیولوژیکی یعنی جلوی تمام کانالهای های رزقگیری از جهانشون رو پی گرفته و اینا دستش از جهان کتاست و هر هی بیاد داره حالی سر میشن، قاعدت زدتر میشن، می هی بیشتر میخورن و بیشتر گوش میزنن. روابط اجتماعی هم داره. هرکسی صد تا دوستاش نوپن صد تا دامن داره، هز و گروه فلان روابط هم داره و دیگه داره عاطفه و محبت ترجیح نمیکنه. آه؟ دستگاه داد بهش نمیلیسه. این روزیها، این روزخها درش حل نمیشه. بر لبه آب، بر لبه چشم نیست و دی تشن نیست. این مطلب دیگری هست. حتی در ماز همه مازو همی تونید. دیک جمعه بسیار نابی در اپانیشاد ها یه بار من رو برو شدن در اونجا میخوندم که فکر انسان محصول است که میخوره حکمت و علم محصول هستش که انسان میخوره ببین پس این حکمت در اعماق تمام مذاهب وجود داشته و همونی زمین در این کتب هست همه اینا یک حرف زدن تمام مذاهب یکی هستن به قول قول قرآن تمام هم بیامدن یک حرف رو بزنن یک دین بیشتر وجود نداره عدیان غلطه دین بقید وجود داره یک دین بوده حرف هم همیشه یکی بوده و داستان حلال و حرام بوده که چگونه زندگی کنید تا این جهان هستی به شما رزق حلال بده تا بتونید شما سلامت تن پیدا کنید در شما عرض پیدا بشه وجدان پیدا بشه و, و روحتان زنده بشه, زنده بشه و تا چنان حواستتون و حوشتون فعال و خلاق بشه خلاق بشه تا بسونید آن خلاق رو دیدار کنید یعنی خادر لتون رو یعنی خداوند رو دیدار کنید اگر علی جز خدا هیچ نمیدید برای اینکه رزقش به کمال حلالی و پاکی رسیده بود و تیب و تاهر شده بود از اینقدر چشمش زولاد شده بود که بتونه خدا رو ببینه اگر محمد با خدا سخن گفت در میراج برای اینکه گوشش انقدر شفاف و زلال شده بود به رزق حلال ها که تونست با خدای خودش حرف بزنه درجات انبیا، درجات ولایت و امامت، درجات معرفت و دین اخلاص تماما درجات رزق هلاله و سلامت هم چیزی این نیست خب پس در واقع باید گفتش که کل جهان هستی هفت زمین و آسمان و که در درس هست تماما جهان رزق برای انسان این کل جهان را آفریدیم و مسخر بودید انسان کردیم تا به انسان رزق بده تا انسان چه بشه؟ تا از رزق به حق خودش برسه خدای خودش رو بشناسه و به حضور خداوند برسه و توفید وجود رو درک کنه و جمال روح خودش رو که خود پروردگار هست دیدار کنه و خدا در خود پیدا بشه بنابراین صوبت بشتر دین و دنیا است رضای رازنی دنیا دین پس دین روح روحانیت معرفت عرفان، حقیقت وسیرت هوش رشد نبوخ همه اینها در واقع میشه گفتش که از دنیا درمیاد. میاد از دنیا در میاد. در اسلام در کلن در دین خدا دین و دنیا دوتا جهان در دو تا زمان نیستند یک واقعی واحد هستن. ببینید قرآنی فرماد که هر که در این دنیا در عذابه هست در آخرت عذابه شدیدتر است. هر که در این دنیا در عزت و رحمت هست ها در بل از مرگم از عزت و رحمتی برستری برخوردار میشه. این یک تیف واحده دین و دنیا این همه. جدا کردن اینها این نفاقه. اینها جدا شدن این نیستن. دین از دنیا درمیاد بسته به این داره که انسان چگونه رزقش رو بخواد به دستیاره گفتیم رزق یکی از طبیعت یکی از جامعه رزق مادی، رزق آتیفی میزانی که بر احکام دین خدا عمل میکنه این جهان براش حلال میشه جهان براش حلال میشه باعث رشدش میشه یعنی جهانش، زندگیش بهشتی میشه در این جهان جهنمی میشه این مطلب واضح و ما می‌دونیم که در دین اسلام از یه لاز بخوام بیان فلسفی بکنیم غیر آزیستی ترین و چه بحثا میشه گفت ماتریادیستی ترین دین جا تاریخ بشر بوده کامل ترین بوده تمام سورهای قرآنی میبا کنید اکثر اسمایی که بر بالای سورها ها هست اسمایی طبیلی است، مادی است سوره یعنی سوره بقره بغیره، نگاف ببینیم طوفان آسمان، نهچ تماما اسمایی مادی ببینیم ماتریادیستی داره ببینی؟ نیست این یعنی درک حق در حقیقت در واقعیت اسلام تنها دینیه که سجده بر خدا اینه سجده بر خاکه یعنی آغازم در خاک خدا را بدوییم باز اهمیت شریعت اینه این سخنها که ما عالمانیم ما رو با این مسائل پیش با افتاده مادی و دنیایی چکار خود این رو گفته که کافران این استبزادشون ما خود آلمانیم. ببینیم پس نیاییم بگیم آقا جان این حرفای چارده قرن پیش بوده مال اعراب وحشی سوسمارخار بوده این مزخرافات واقعا خودفریبی واضحه انسان تماما قرائز و نیازهاش دین خدا اومده این قرائز و نیازها رو بر اصول و حق قرار بده که این نیازها ها او رو بینیاز کنه نه رو دریوز یوزر سیر و بنده و بدبخت بکنه شما ب خلاخترین و تودهی ترین و سرنوشتاسترین فلسفه هایی حتی مادی هم که در این دو قرن اخیر پدیر اومدن و ایدولوژی ها رو ببوردن فلسفه هایی که دست از خیاض برداشتند برداشتن و سعی کردن فلسفه رو در خدمت حیات مادی و غریزی بشه در بیارن. خود سوسیالیسم، مارکسیسم چرا اینقدر نفوذ کرد در اعماق قلب تو دا و حتی روحانیت مذاهیم داد؟ و ما از هایترین دنیا به سوسیالیسم روی آوردند خود مسلمان ها جدی ترین سوسیالیستها آب در آمدند. ببینید معتاده دارم از فلسفه های مادی شو باد می کنم. این فلسفهای درش خدا نبوده تمام فلسفهای غیرفلسفهایی به خدا بادیت دخداست. اونایی که در آدیستی سر بخور ها در مردم تونستن دخولی بیشتری بکنن و بر حال سرنوشت رو تغییر بدن و فلسفهای باشه که حرف نباشه واقع ادعا نباشه. که فقط به درد اشراق و دربارها بخوره. چرا اندیشه نشه اینقدر خلاقه و اینقدر تلافلسفی ای هستش که داره رسوخ میکنه و اثر میذاره چرا حالا اینکه برای اولین بار اومده از قرائت صحبت کرده میگه آقایون فلسفه حقیقی بایستی از قرائت صحبت کنه؟ مشکل اون آب خوردن و خوابیدن انسان حل کنه ما بایستی از اش بیام با این روی زمین راه بریم تمام هم اینطور بودن ما چرا موفق شد سر و بشی انسان دیگه کنه برای اینکه اینجوری نگاه کرد خود گاندی خب گاندی که یه عارف بود اون همینطور خود گاندی گفتش که من نیومدم تا مردم هن را به عرش و به خدا و باسمان بارستانم من آمدن آداب خوردان را خوابیدن و, و توالت رفتن رو به مردم یاد بدن خود تمام پیانباران خدا مومدن همین یاد بدن که چطور بخورند و بخوابن و جماع که تباه نشند ببینید تکبر و غرور و شیطنت و جهل جنون بشره که اقام خدا را در شعن خودش نمیدونه و میگن ما خود آلمان هستیم در حقیقت دین اسلام دین است تون دین آخر زمانه متافیزیک و تمام اسرار آسمانی رو بر روی زمین نشانه رفته چون عرصه آخر زمان عرصه ظهور متافیزیک در فیزیک هست لذا دین اسلام هم کاملترین شریعت ها و حکم ها رو داره. شما نکنید امام یعنی چی در اسلام در, در شریعت؟ امام یعنی مظهر کمال و جمال خدا در عالم خاک. یعنی ظهور متافیزیک در فیزیک ببین اینها داری نشانای این از چه حاصل میشه از کمال شریعت از کمال شریعت این میشه ببینید در فلسفه اشراق سهر وردی یک بحثیت از عنوان هیکل نوری هکل نوری انسان کامل رو سهر وردی میگه انسان کامل از طریق طیب و طاهر ساختن رزق خودش لجنیت و ظلمت را از وجود میزده ها؟ و به هیکل نوری میریسه نوری پروردگار از وجودش متساعد میشه اون نوری که در نقاشی ها و در روایت ها از پیشانی انبیاء اولیا صادر میشده این واسطه رزق حلال بوده به یک کلام مشکل تمام انسان در خود تاریخ و این که از بطن دوزخ تکنولوژی و نفت که مواد در دو دوزخه طبق کلام پیانبر این رزخا اینقدر آتشین دوزخین و نفتین شدند و انسان برای یه تن به هر کاری میده تر به هر دروغ و دقل و ربا و خودپوشی میده ولی الازم معیشتی هزار برابر بیشتر از نسلای قبزاری میخوره و تفریح میکنه ولی هزار برابر رنجورتر و معذبتره یک کلام علاج تمام دردهای بیدرمان فکری و روحی و روانی و عاطفی سیاسی و اقتصادی و ایدولوژیکی علاج تمام کچی ها پنسیر نونه حلاله پنسیر نونه حلاله نونی که از طریق دزدی و دقه و دلوقویی بدست میاد الوازه روانشناسی همون نون تو گلی آدم گیر میکنه حل نمیشه زخم میده میاره کلگر از کار میندازه قلب رو تمام اعضای جواله رو خون رو ثقیل میکنه مستقیر میکنه، حیات رو کند میکنه و انسان به سمت مرگ تدریجی میره. ببینید تمام حکیمان بزرگ، حالا الله سوای انبیا و امامان حکمت عجل رزق حلاله. حلالیت در رابطه عاطفی و در رابطه با طبیعت و تغذیه رابطه آطفی که بر حرامیت باشه بر فسق و فجور باشه در اونجا محبت پدید نمیاد جنون و کیون و نفرتی پدید میاد که سعی میکنه اسم خودش رو عشق بذاره. ببین محبت پدید نمیاد قلب رو سی... سیاه میکنه آرامش و عزت رو از انسان میگیره مغز رو از کار میاندازه حواس حتی جانوری انسان رو مختل و مخلوش میکنه حتی ابتدایترین حد شعور حیوانی را در انسان تباه میکنه حکمت معلول رزق حلاله شما نیکنید در قرآن کریم اومده که ای رسول ما بگو که من بابت رسالت خودم از شما حقوق نمیخوام موز نمیخوام اینو تمام معلمین روحانی تمام مشتهدین تمام آموزگاران معنوی و معرفتی باعثی بدانند که هر ندارن از بابت این رسالتشان حقوق بگیرن از مردم. والاستی کار کنند، با اسپرن بیل بزنن با اسپرن کسب و کار داشته باشن هنروفن نیباسی بلد باشن امامان اگر اصفهان ما هستند، با این شکلی باسیاز ما ترویج کنیم نه فقط یک سری آداب جان نواز آبکشی در مسرید کنیم ما واسه بدونیم که دین اینها هست نماز روزه خمس زکات حج خیرات اینها فرو دینه فرو یعنی میوه وقتی اینها درست انجام میشه زندگی بر اساس حلالیت اجرا میشه اینها به طور طبیعی در میاد اینا میوه ها هستن در این سال ما یک درخت بتونی و آهانی درست کنیم و وقت میوه پلاستیکی و گل های پلاستیکی روش نصب کنیم مذهب نفاق نماز منافقانه روز منافقانه خیرات های منافقان اینطور نبایستی باشه ما نمیتونیم رزقی رو که ذاتش حرامه یه مقدارش رو خیرات بدیم برگیر فرض کنیم که حلال شده مثل اون دزدی بود که مردم گ سر گوشت گوشتش رو خیراد میکرد همسرش ازش پرسید که این چه کار احمقانهای میکنی گفتش که گوشتش رو خیراد میکنم پوست و دنباش برای خودم میمونه این گناه این با سواب این در این شکلی نمیشه از یک چای فاضلا شما چندتا سب بکشی بریزی دور ما مابقییک مونده توش حلال و پاک و طیب و طاهر نیست این رو ما بایستی بدونیم بنابراین آن معلم روحانی اون کسی که رسالت تربیت رو داره اینها اوصیای های هستن با خود رسول اکرم، مؤمنان در آخر زمان مؤمنان میگه امت من مقامشون در نزد خدا از انبیاء بلی اسرائیل برترند اینها مقربترند بسیاری از انبیای سلف به مقام مؤمنان امت من در آخر زمان در نزد خدا قبطه میخورند اینقدر مقامشون بالاست پس ما سنت انبیا و امامان رو رایت کنیم م معلمان معنوی و روحانی چه لباس چه بی لباس فر نمیکنه کسی که رزق حلال نداشته باشه بخواد از طریق تعلیم و تربیتی که برای رضای خدا داره میده، با این رسول هر نظر بگیره در دولت یا ملت، او واسه کاری علایته واسی با داشته باشه ببینید برای همینه که این همه سخنان زیبای دینی و قرآنی و عرفانی ها هیچ قلبی فرو نمیره واسه که تو میشه مردم رو منافق میکنه و تمام ادبیات و فرهنگ عرفانی و دینی ما پوچ میشه و حجر میشه و اینقدر رسوایی به بار میاره عالمه که خود به علم خود عمل نمیکنه کنه رزق حلال نداره کلامش مثل آب بر روی سنگ خود ایمان جفر صادق فرمیدن که چنین کسانی کلامشان مثل آب بر روی سنگ است که فرو نمیره آنچه که اندیشه رو حتی آموزش‌های مدرسه‌ای رو تبدیل به یقین و علم عملی میکنه رزق حلاله آنچه که باورهای ذهنی دینی و معارف و آموزش‌های دینی رو تبدیل به ایمان قلبی میکنه قلبی میکنه وجودی میکنه و در خون جاری میکنه رزق حلاله ما بایستی بدانیم اگر دریایی از معارف هیچکدام قلبی نیست همه الامه درند همه عارفن همه موزه فقیه هستن همه دم از عقل و خرد و انسانیت و برابری و عشق و ایسار میزنن کلماتش رو از برند همه دارن نصیحت میکنن ولی در عمل همه چیز وارونه است اشکال از رزق رزق تا حلال نشه دریای از معرفت ذهنی تنها بکار نمیاد و بلکه تدیل به عذاب و رسوایی میشه پس ما بر اساسه فقی که علمای ما، غرفای ما، مجتهدین و فقهای های بر حق و راستین ما بایستی تدوین کنند فکر آخر و شریعت آخر و زمانی اشتهاد مشتهید کسیست که زمان را بشناسه و بر آن اساس، بر اساس معارف دینی خودش و قرآنی خودش بتونه حکم الهی رو درباره هر شئی، هر عملی و هر واقعی صادر بکنه شریعت آخر زمانی ما می خواهیم سود شریعت در هر یک پوسته در صورتی ابدی میشه شه که مشتهدین و اساس فقه قلبی و عرفانی خودشان میتونند تمام مسائل روزمره بشر رو از خرد و کلان حکمش رو حلال و حرام بودن یا مستحب و مکروه بودن اما با حبودنش رو برای مردم عاشقار کنند و به مردم بگنند که چه کنید چه نکنید چه بخورید چه نخورید باکی باشید با کی نباشید. همچین فقی ما نداریم. فکر آخر و زمانی رو باستی مراجع ما بنیانگذاری بکنند. جد این هیچ راه نجاتی نه برای کشور ما نه برای مسلمانان نه برای خود علمای ما وجود نداره. اگر دین ما، ما و مراجع تقدیر ما محجور شدند، خانمشین شدند، به این دلیله که نتانستند فقه و شریعت امروزین و آخر زمانی رو برای مردم بیان کنند. برای همین مردم مجبور میشن به شریعت کاخ سفید پناه ببرند. چاری جزید بس.